و داره مجمعی اللهم افیانا جمعی المشنگلی و الحمد و الحمد یه توضیح مختصری راجع وقت دیروز هست رو کنم برقر وقت بحث جدیل انشاءالله تعالی از سرین در انواق اصول عملی لحاظ همچه هست که محرز تیره محرز و که در اصول محرز بلاقات تسابق در موضوع نگاه کرده میشه و در اصول غیر محرز امکان داره تصرف در موضوع داره چون نیازی اونی یعنی شارع یا مقنم یا قانونگزار نیازی اونی بینه تصرف فقط در یعنی شک رو لحاظ میکنه به لحاظ اون خوب شده مثلا تو آرکن اگر کسی تصرف میکنه کنه مالک این اصل محرزه اگر مثلا یک عطایه و از خون در یکی از دو زرک اختار است تصرف بکنه بگر هر کدام از این دوتا ملاق به اصطلاح نجفن به ملاقات بادن. ممکنه. لطفیشون نیاد ی نیزی که اختیار میکنه این شهر را جهاز میکنه با دلده یه وجوب اجتناب از ملاقه از دن اون رو نگار میکن. اگر مقدار تصرف فقط همین لزوم اجتناب باشه این اسمش میشه اصل اصلا د اگر تصرفش دیشتر از این بشه میشه اصل مورز پس در هر دو قصر یک نوع لغاز محفر هست الا این که در حضرت مورز لغاز فقط به لغازه یعنی که شک رو بالغاز دلیل خوب نگاه میکنن بالغاز رو خوب نگاه میکنن یعنی فقط اجتناب یعنی فقط به این مداز که تو از این دو طرف اجتناب بکن فرامونم دفع این در شوهر همین قبض فقط حقوق و تقرح خوف مرازه. دیگه بیشدیم مراد نیست مثلا بگه این بوله یا این خونه اما در اصل موقع فقط مسئله این نیست که حکم را اعلام بکنه بلکه موضوع هم تصرف میکنه میگه بلاغ از رکع اینجا در موضوع هم تصرف این نیم توضیح محتصل راجبه فتهمه بحث دیدوست از کنم که به هم بحث بعدی ارز کرد این طفل این نسخه مفروض فرایل سه مقصد شده مقصد اول در قرد چون ارز کردن در نسخه اصلی شیست چه مقصد نبوده لیکن به هر حال قیلن شده سه مقصد و آقایانی هم که بعد از شیخ آمدن همین سه مقصد رو را فرک کردن مقصد اول در قرد رو بردن و برد شن. حالا مقصد اول رو به طبع آیان در قرد مقرد میکنه از نظر ما این بود که حصولا این که بیاییم به لحاظ حالات مکلن به این دید که یک مقصد قرار شدیم این به نظر ما درست نبود صحیح این بود که بحث رو در عنوان تنجد قرار بگیم و تنجد رو به عنوان وجود صورت ذهنی از تکریق فعلا در شباز رو و این صورت ذهنی رو از لحاظ های مختلف بررسی کنیم یه چه لحاظ‌های بررسی صورت ذهنی وضو و بعد از وضو صورت ذهنی هست ببینیم اولاً مطرح بکنیم آیا وضو و عدم حضور صورت ذهنی در تنجّس تاثیر داره یا نه مثلا صورت ذهنی کاملا واضحه که اصطلاحاً غرق بشه یا نه نیمه وضو بیاره که اصطلاحاً رو گفته بشه ما نظرمون این بود که بحث به این صورت باشه و حالا مصدر هم نباشه باکن خب حالا فعلاً لما علیه لعظه ها به همین تردیدی که در کتاب شیخ آمده فعلا مطلب رو مطرح میکنه به نظر احساسی چیزی دیگری بود اینه به عبارت اون اخراب ها بر هم اگر مطلبی رو فعلا داریم سنگ میکنیم قالب رو با همین قالب های حوضه به رو داریم حالا فعلا خیلی قالب شکری رو اصطلاحه روز نکنیم با همین قالبی که در کتاب رسائل مرحوم شیخ آمده جلوبه. اصفیم در این بحث مرحوم شیخ رضوان الله تعالی که به عنوان محصد اول که این مطرح شده و در حقیقت مقدمه ای بوده برای بحث زن حجیت المزنشون اسم رسال رسالت و حجیت المزن نبوده در اینجا شیخ مطلی رو فرموده با عنوان لاحق شالفی وجوب متابع سلقت و العمل حلاق قهر لعنه خوب نفسیهی طریق و واقع یه تعبیر اینجوری رو مردم شیخ به کار برده که برای اینجا هایی بعض در دوارات ایشان هم یاده رسائل می کنید کنم که شیخ یکی مسئلهی عمل رو بطرق کرده که عمل برد بعدم در مقابل تحلیل تحلیل تحلیلیت رو به عنوان به نفسه تحلیل نفسی و به نفسیهی تحلیل ایشان به نفسی از وقتی ایشان بعدها هم ورده میگن که قرف این معنی متعارف این معنی ایشون تبیر به منطقی نمی کنه تبیر منطقی رو بعدها شایینه کلام ایشون به معنی حد وسط ایشون تعبیر نمی کنه مثل مصطلح منطقی مثلا میگه ایشون میفهمه که حجت معنی حد وسط یه این معنی حجت نیست چون حد وسط نمیشه و بعد هم تو به ای که شکل دارن در هر مطلبی از مطلب رسائل این طوریه که مطلب و مطلب اهمی کنن بعد ادهی از مسائل مهم رو با عنوان تنبیه ها در کتاب سابقه این هم بعدی از کتاب اینجوری بوده به عنوان تنبیه ها روش شکلی این صورت نه مثلا ممکنه کل ایشان در خط نگوه مثلا در روجه خط سه سطحه باشه اما تنبیه ایشان سی سطح هستن و این که ایشون داره، در تنظیم علمی بخش داخل بحثن مثل ایتون در استثاب یه تعلیف استثاب دارن بعد اقوال رو میارن بعد هم تنبیه میارن که مهم ارحاظ بخش و تنبیه دیشانه مهم ارحاظ استثاب تو همون تنبیه ها دیشانه استثاب از استثاب خیلی بحثه فراوانی داره که در همون تنبیه ها مرموشه برده این روشه مرموشه انصدادم مطرح کردم با تنبیه این است که شیخ گرفتن در بعض از کتب هم هست و بعض از نکات فنی هم بر اون ذکر شد اما انصافا خیلی اون باقی خارجی مبادث در نوشتار مرمون شیخ به نظر ما خیلی دقیق نیست خیلی علمی نیست باید یک در این تمبیه ها خود بحث انجام بگید بارد این بحث هم دیگه همین رو اتفاق بکنیم چون این ها و شما رو مع عرفتم که پس مرحوم شیخ یک مطلب رو به عنوان عمل علی طبغ الفن، مثلا قالوا، یک مطلب رو به عنوان طریق الی الواقع، لکن به اضافه به نفسیی و نحو به نفسیی چون بعد میگن مثلا حزوای مفتی به جهت، به جهت شاره یا بیانه به جهت شاره طریق الواقع، لذا یک معنای حجت را هم به این معنا میگیرند. اما تصریح نمی کنن که این بجرده شه اصطلاحیه بیشون میگه در باب بینه در باب جن در باب فتوا میتونیم بگیم طریق الال واضح به جن اصلا میگیم حالا به مقام علی داره این بینه میشه حده وسط واقع بشه لکن این طریقیت به جن اما در باب پت طریقیتش به نسته این و در اصنات کلام هم گامدانی میگن خودجیت و قبل پس مرحوم شیخ پس و خودجیت میدونن این همه کلام که مراد از خودجیت در کلمات شیخ چیه اصلا مراد اول من از این چاپ جدیدی که از وسائل شده, وسائل شده حالا با کاری به نسخ و اینهاش ندارم چون به نظر ما نسخای خوبی هست راست سوال اینه دو این نگاه هم کردن اصلاً خود در ایشون دیگه نبوده تقریبا از نسخه مخطوط من یکی دارم که مال شاگرد ایشون معلوم حاشیه که نسخه بسیار ظریفی که در اختیار ما نبوده یه نسخه راست اولا در زمان خودشه شیخ شده که نوشته شده یه نسخه فقهی کوچیک مثل همین که چاپ شده بعد اون نسخه خیلی در عین نمی دونم شده سنگی شده ببینید شیخ در این شاپی که من الان دارم از صفحه 29 از مقصد اول شروع شده میگه لا ایشان فی وجوب متابعه القرض و العمل علیه مادام موجود است تا صفحه 9 بوده در نحو به وسیله طریق ال و ما این چرا این عباراتو خوندین مثلا بگین که شیخ وقتی میگه قرض حجت به مراد حجت چیه؟ از ما کلمه حجت رو اول تا ببینید این چیز رویه. این حجت حبق این عبارتی که ایشون آمده دو احتمال اساسی درش داده میشه این یکی این حجت یکی بال عمله بود از که میگه قد حجتو یعنی یکی بال عمله بود یه هم الان تو زهنم محسن عمله که میکنم سند داشته باشه از امام سجار دارم من علیمه عمل هر که ایو پیدا تا چه شيخ منظور که نه بود و آقایون که بذری ایجاد ننموردن یک قسمانه حجیه در حقیقت از همون روایتم اخذ شده بخیله اخباری ها هر چیزی رو که به بالا انجام بدی هر کسی اینطلاقه عمل میکنه من روایت که تصویر صافی رفتید ماسع سجاد سامره حالا یک احتمال این که مراد ایشون اولا روشن بشه مراد ایشون از حجت یعنی ما یک زمان عمل او حجیت یعنی وقتی میگیم قرد خود یعنی عمل به جای لا اشکالی وجود وجوب مطابعت القرد و العمل مادام پس خود در تفسیر شیخ برای یعنی وجوب و العمل علی. چون این برمانی قرد خود خب این اصلا محکوم حجیت چیه چون که حجیت معنی حد وصل سبت خیلی خب این پس یک معنای خود جد در عبارت شیخ احتمالا من نصف بهشون نمیدم چون با مراجعه که تا این نقدار داشتم و زیادتر نگردم هم کلمات مرمومه آشیانی شاگردیشون رو تقریبا تا آخر در اینجای هم تا حد زیادی کلمات مرموم رزای شیرازی اینها نبیشن دقیقا که در مجلس درس شکل رو باشه این شاگرد شاگردیشون لذا من ارها از اصم شایخ هم این تعب حالا میکنم این مذایبایت همه این گفت روز بخونیم مشایف هم این لذا این همه وسواس دارم چون این برداشت خود من پس مراد از جیه فقط این از لزوم عمل امال عراسی بگه. این معنای اول حالا اون لزوم این حالا اون در داره حالا اون رو من از چیزی نمیشونم روشن روشنسو این یک درست من بکنید. یک بحث دیگه که بردیشون خواهد لحنه و به نصیحی طریقون الالباخه چون میگن معلول این علته در اینجا چون بلقدر تحلیل هر چی باشه در خواهد یه توضیح بلی محدود در حد مسئله این باشه باز کردنش یک احتمال دیگه این هست که مراد از بجیت طریقیت باشه لحنه و به نصیحی تاریخون. چون بعدم میگه مثلا بیانه تریخون به بعدم میگه فتوای مفتی تریخون به میگه به حجت میشه بخشون وصل واقع میشه به این حجت میشه بخون من پس تا اینجا تا احتمال من احتمال ارزم هم برای تعدد و باشه بخشون در کلمات شاگردگیشون و بزرگانی که بعد آمدن خیلی واضحی رو توضیح ندادن که مراد شیخ چیه؟ آیا مراد شیخ از حجیت لزوم و لعمل پس اون یه علاقه او حجتون یعنی یکی بار اعمال این اول یه حبارتی چیار یا مراد از حجیت حریجیت اون زیده بارد تعلیم ایچان لانه او به نفسیه یعنی بدون جل پس یک برست که ایک چند میخوام پیدیوی کنید آیا مراد از حجیت در کلام شیخ یعنی چی؟ این روشن بشه. تا اینجا دو تا احتمال لزوم و عمل و تریخیت تریخیت الالباقه چون قدر تریخیت از الالباقه پس اگر تریخ شد الالباقه یعنی حجت ماکان تریخاً الالباقه این دو... مطلب باشنگ شد تا اینجا دو مطلب دو با. خب طبعاً بده رزوم عمل یه چیزه تریخیت چون ممکنه چیزی کسی بگه آخر رزوم عمل ندارم تریخیت داره شما قرد به این مورده تکران نمهار میشه فردیشی میخواه میفرار <تصفح> کنید این طریقه لباقض داریدی اما لزوم عمل شون قابل برد در بسان تصرف میکنند اون لزوم عمل باشنشتا چی مخواه برس کنند؟ چون شما ممکن است مثلا به این اطلاع اشکال دیگه بکنید بفرموید که لزوم عمل یک حالت فردی است یک تدیده فردی است بسید و جید این تدیده اجتماعی تفسیر ما به آخر درست نیست. وجو متصاوراست حالا ممکن است ما طبیعیات قبول بکنیم به این نه اینه که من میگم چون اولین ذرافت ها رو به کار نبردن ممکن است ما طبیعیات سر... یه برخ با در واقع از این که میگه چنان این ورده تکان نمی خورد چنان تکان نمی عمل نمکنه دقت میکن ممکن است که انسان غلط داشته بشه هم داشته باشه یعنی دکتریش شب درباره بنا و درباره مشروب و شراب صحبت می‌کنه گیر ایرام اومد صحبت هم کرد اون دو ساعت بعد روز میخوام شب ایرام هستن من شراب زیاد خورده بودم که ما بود. حالا تریبی بود ایرام حالا برعکس حالا ممکن است انسان یعنی را داشته باشه دو ساعت در نذار مشروب صحبت می‌خوام از بخوره این دو تا الان توی دنیای ما این بسیار متعارف یعنی خیلی از این غریب دید. پس که آنوقت اش جای خودش محدوده از ماشینش بیله همه‌دیگه تو خب دیگه آنکه کتیکی شده که سیگار برای ریه مسلم موادیه سرطانی بگیز کتیک از یه آلبرد اول شوهدش مادرت رو مصرف می‌کرد با کت او مطلب مثل گذاهم بیگاه یک سیگار نکش طول و عمر کم می‌مونه که بردش از می‌کنه یعنی یه ساعت با سیگار شیرینتره پیش سیگار که درست سرکولاسی کم می‌کنه بردش از خود حالا که دست می‌گیری چی؟ قرط داری؟ این منافع در قرط امام موجوده و که این بزنه چی واقعه؟ این با تحلیلات دقیق و آزمایشگاهی آثار شراب رو میدینه اون میخونه آثار سیبه رو میدینه منزل این که میخونه پس یک وقت لزوم و لحمله شاید شما بگید مراد هم مراد بعضی همزه تریدیگر اون من که واقعا چون فقیلا نسبت نگیدن بگیرم که شاگره ایتون من منونجا از درسیشان چیزی رویشان نسبت نگیدن پس یک این از تا اینجا البته ما بعضی ها به جای تریریت کاشفیت گرسن تصروبا دیگه برس بعض شده بعضی ها به جای کاشفیت کشف گرفتن که قبل خودش به کاشف نیست اینه کشف حالا به هر حال من فعلا کارهایی که برس شده بعد عرض می پس بخص اول آیا مراده از حجیت قرد در اصطلاح شیخ خود یعنی یکی قول عملو به؟ حجیت این روزو مهمن؟ یکتر دو مراده از حجیت طریقیت باشه به واقعه ممکن است طریقیت محفوظ باشه اما عمل نباشه و نظر شیخ از حجیت در اینجا طریقیت و اون عمل فرق طریقییت لعنه او به نفسیهی طریقان در پس این بحث اول بحث دوم آیا اینی که الان مشهور شد و حجید قرض مراد شیخ از این معنا به طریقان به نفسیهی به نفسیه این توضیح کنان عرض بخنم شیخ از اینجا که براد بحث میشه یه چند سطحه که خود بحث و جید به قطعه از قطعه همون 29 تا سفه 35 بعد وارد تنبیهات میشه مرمو شیف به قطعه همون از سفه 37 وارد تنبیهات میشه تنبیهاتش بحث اول در تجربیه بحثای بعدیش هم هم در قطعه هسته است هم در نفی اخباری آخرش هم در علم اجمالی این مقداری که من نگاه کردم حالا چون از سابقم تو زهنم امروز این روز باید دومرتبه برای تنکیدم این روزا وستوات ما زیاد شد دومرتبه نبوده این مقداری که من نگاه کردم شیخ تعبیر به ذاتیت نداره میگه قابل جل میز خودجیدش میگه مثلا نمیشه نفیل کرد اما بگیم حاضرین حجیه ذاتیتون حجیه تو قدر ذاتیتون این تحبیرم شیخ نداره لنه هون به نفسه داره کلمه به نفسه داره حالا اگر شیخ فرمودلا اشتالفی وجود متابعته و وقت حجیت داره حجیه یا لزومه عمله یا طریقیته اگه چه تحبیه بکنه؟ بگیم حجیه نفسیه در مقابل جهبیه نده کنا آیون من دارم اضافه میکنم چون گفت به نفسیهی طریبا از کلمه این به نفسیهیشان توطیفش بکنی تعبیر بکنیم به ذاتیه این تعبیر الان مشهوره الان معروفه که حجیت قد ذاتیه قابل تفتیق نیست قابل اثبات هم نیست قابل نفیه هم نیست قابل جهب نیست قابل اثبات این کابل لاترانالوی ادوجیر مشخص داری که کابل جانی است. لکن تعبیر بذاتی رو نداره آن وقت. این تعبیری است که بعدها آمده. آیا تعبیر میکنیم که مرا دشی خود نفسیه در مقابل خود جاتن جالیه، قیریه نیست؟ مطمئنا اینی خود جاتن ذاتیه نارم استادم دارم. به این معنی که این ذاتید اردی نیست قابل این نیست مرموم این این یک تبدیر خودشون دارن حجیت منجعله در مقابل حجیت جهلیه حجیت منجعله هایی که ذاتن برای جهل حجیت از طریق با منجعله می این هم در اصطلاحات ایشانه در همین سرورات دکار بودن در مقابل مستفر از این فتواه این ها حجیت این چند تا اصطلاح شد سست. حج... حجیت عقلیه در مقابل اعتباریه بگی مراد از این حجیت حجیت عقلیه یعنی یادر کبول عقل این از مدرکات ضروری و ظهوری عقل این چند شد؟ چهار احتمال دیگه داده شده که ما در کلمات مرموم میذارینا چی رازی علامه و رفت شد یعنی خیلی دقیق نگاه نگذن تربیر به حجتون و فحریه. از که هیچ پر در سلام اون نیامده این بعدی ها در حقیقت آوردن پس یک تأدیر دیگه خجتان این خجتان قهریه اگر من رو میزشید از درست شمس نیزه باشه با اون تأثیر اول خجت بیشتر نمیده چون لزوم و عمل خهرن این خهرن عمل میکنه این خجتان قهریه با طریقیت نیمی اما با عمل می سازه احتمال لزوم عمله احتمال بزن چاید هم تحکیلش در درس رو لزوم عمل بوده چون مهمونه می روشی شده شابیشون حجتان قهرهیه قهرن نه قهرن نسان عمل می این قهرن عمل همون لزوم عمله و احتمال هم ایک استداخلی هم حجتان قهرهیه دیرن بعضی هم از خودشون دارم منظر بایدون خودشون ب توضیح هم این در غریضه ای انسان هست چون انوه غریضی در حیوانات هم پیدا نشد مثل تابونی خود جیه به در ایک بار نکنی منتظر تابون نکرد چون که این که در حجاتو مختلف در از که هم دیگه این که پاسوی مثل اصوینا که در حجاتو روش بالایی دار اولی چیخ هم آخواست پس بنابراین این که مراد شیخ از حجیه چیه <تصفح> شیخ خیلی گفت که که اصطلاح نه اثباتشون ممکن نه نه از این عبارت بیشتر ذاتیت رو پرمیدن محسوسا کسانه که قرط رو و جیت رو به معنای طریقیت برسن یعنی طریقیت قدر و جیت ذاتی برای قدره چون طریقیت ذاتی پس وجیت برای قدر ذاتی نمیشه به انسانی که قرد داره به این که این ملک او نیست بشه بگه درشت تصرف بکن بگه ملک تو هست یاد بگه هستا ملک تو نیست. نه طبقه رست میتونه چه هم نه طبقه البته این که کردن به ارتباه اینو در مقابل ذاتیات بگیریم درست میریم چون ذاتیات در که عرضیه دیگه ذاتی یا شیعه لم یکون محللالا ایلا انعجبور و عاری یه مقابل عی در مقابل ذاتی نه اعتباری اینگیر مثل قبلچه گفت قبل شد. عمل به یعنی اون واقع و نحتیش اثباتش و نتیش قابل جی. این نحیه ج رو گرفتن به معنا ذای م لاظت رو بید. در این دو رقصه بود که آان قبل از رو در بحث در نظر داشته باشد که اصولا معنای و بودچیه چیست در کل ماسهش این حجیتی رو که شیخ تصویر کرده این رو چی تعبیر بکنیم؟ حجیت نفسیه حجیت حجیت ذاتیه حجیت نفسیه حجیت عقلیه حجیت به اصطلاح قهریه چی؟ چه تعبیر از این حجیت بکنیم؟ این در کلمات شیخ نیاده این نقطه دومد این بحث به این صورت که این حجیت و طریقیت و عمل من یادم نمیاد دقیقا یعنی مستقلن در خلال کلمات سابقی آمده باشه من مواشته می در خلال کلماتشون آمده مثلا تو وقتی بازه بحث خیاض شدن مثلا بعضی از علمانشه اگه خیاض مولدی یقین باشه که یقین حجات رو مخشکال نباشه یعنی به ملازماتی به مناسباتی اما من یادم نمیاد که این بحث مستقلن در حوزه های اصول ما وارد شده باشه الان تو ذهن من نید این اوضایی که من دندر که برسید پس این بحث رو چطور شده شیخ برداشتن مستقل یک مقدمه قرار دادن بنابرای رسالشون یا محصدی قرار دادن بنابرای این کتاب موجود چاپ موجود چطور شده شیخ قدس الله این بحث رو آورده یعنی به عبارت در ما در گوزه های اصول شیعه این دنس آیا به این صورت قبل شیخ مطرف بوده؟ بعد شیخ رو تقوری داده تقرد کردی؟ یعنی این به احتمال بسیار قوی خود بستقرد در گوزه های ما بوده اینطور میسه؟ خب در کتاب منافع هست و اما در کتاب‌های های درسی قبل در دوران ما زاجنن تأثیر شیخ اساساً در درجه اول احتمال قلوی می دانداره یقینا نداره به کلمات ساهاد فسوله چون کتاب فصول کتاب معتبر بود ساهاد فصول به یکی مناسبت هایی در یک جاهایی متعرض این بحث بوده مرحوم شیخ عبدالله نفسه در کل بحث قطع به یک جاهای عبارت صاحب فصول رو اووردن البته عبارت صاحب فصول مختلفه یعنی عبارت صاحب فصول بعضی هاش تریفتره نه در همین چاپی که الان در من هست از تقریه چلیه مرهوم شیخ بانوانه در وقت تجربیه این در وقت تجربیه یه از هرام این بعض معاصلی تقسی از معاصلی مرهوم صاحب حصوله ایشان بله به مناسبتی کلام سال خسول تا سفره چلسه او ردی برش کردن و یک مقدار متحرض یعنی نقطهی بوده که بله شیخ به اصطلاح ازش میخواسته استفاده باشه که خود خودجیتش ذاتی نیست مرحبا صاحب اصول خلاصه حرفش اینه که خودجیتش ذاتی نیست و ممکن است شارع مرحب بکنه این مهم کار این بوده پس این مثلا یک جا در مرحب چیز اورده مرحبا شیر در بحث تجربی اورده دا که در حقیقت صاحب جایی دیگری هم این محلت رو اوگرده که مرمون شیف در تنبیه در تنبیه سوم از تنبیه ها تقه به این صفحه صفحه 67 به حسن این شابیه دست من هست تقبیر کردن سنه اندبه و المعاصرین رجح الهوک دادن سه گارقت القطاع ایشون گفته بله قطع حجت نیست ایشون اینجور داره یوشتر از رفی حجیت القض ادم و من اشاره قضع جای اشاره من نکنه چون شیخ میگه حجیت القض این طور قابل من نیست اما معذاله تغییر به هم شیخ باز اینجا نمی کنه یوشتر از رفی حجیت القض و من اشاره هم ل این کانال اعلوی زن قدیم بعدم من. ایله انهو اگر به خویجت القت ظاهراً مالمش. وقت منو مصاحبه برای اثبات معتبرش که حجیت القت ذاتی نیست. این مثالم میزنه. مثالش اینه. یشو نگرفتم. اجبار اند الماصل مثال. هم باشر اوغلايي بودن رو که قابل انعقاد باشه قابل انعقاد باشه به قال لعلی لا تمسی معرفت عوامری علامات تعوبه منقبل اهل اوجادی الیها صد بل اقصر علامات الی که من به طریق مصافحه میگه تو هر چی قصد کردی که من خواستم انجام نده اونی که من از من از دل به من سازه کردم اینجا ممکنه؟ بگی چه ممکنه؟ ببینیم سال خسو ممکنه نه؟ میشه پدر به پسرش بگی یا مولا و عبدش بگه آبا جان شما هرچی یقین داشتی من خواستم انجام نده یقینت کافی نیست اگر از دولب من به لحظه سریع و روشن و واضح شنیدی انجام بده و اللہ انجام نده ولی اون یقین پیدا بکنی که این مراده همه به قصده ولو یعنی پیدا این مثال رو سافت داره. پس معلوم شد که قبل از شیخ این برز در حوضه های ما به این عنوان آمد اون عنوانش این بود که آیا می تواند مولا بگه بعدش اونو حکی رو که قرطه بشداری انجام نده باید مثلا از این راه معین باشه شیخ آمد فروض نده از این تعبیر شیخ که نمیشون تأبیر کرن با حجیت ذاتی و الله باز هم شیخ در اینجا تعبیر مثلا شیخ این تعبیر شیخ در دیگه برشان میکنن بعد میگه وهمت خبیرون رد شیخ اینه یک فی فی فساد داله از اما ستار مرهر قصد بشهی و عدم اما با آثار داله که شیعه علی چطور ما قطعه پیدا بکنیم و آثار برش مترکت نکنیم من از هر آثار آثارنده، آثار مراد که ما صرف فعلن الاصار جایی که قد تریقه صرفه شما در این واقع رو میبینید چطور میشه قصد به واقع پیدا نمی واقع رو ببینید مرادای ترکیب الاصار هر جای شیخ نگفته ورنحو ذاتیات از این تمدن ذاتی پس اصلا شو ذاتی از چه در مورد چه چیزی شما نظر اون چیزی که با تعریف ذاتی کرده باشه اما تو این بحث من نگاه کردم تعبیر ذاتی نداره بلکه شاگردین ای توی تدبیر قهری داره که این توضیح های سمطوری حدی داده شد پس یک مردارم احتمالاً سابقه این بحث در حوزه های ما قبلت شیخ انساری شد احتمالاً یکی از مناشه ترمیز این در کتاقه دیگه ما هست اما من نظرم افتاقه درسیه چون اونی که در حوزه بیشتر تأثیر می کنه قطعا افتاقه درسی هست پس م راجعن علا صاحب خصول به قناصت هم تجربی و هم بحث بحثا اگر اون بیشتر رو حالت صاحب غیر از مراجعه به چون بعد از توارث شده ایشون تقریبا خیلی عبارات صاحب الحصول رو برده. چند عبارات صاحب چه کامل عبارات صاحب الحصول نه اما در این بحث و فواید موجوده عبارات صاحب الحصول اگر مراجعه بکنم به ذهن من که مرموم شیخ تأثراً به کلام ساحب حسود این مطلب رو بنویسن. البته تأثور کلی مسائل اصولی در این حدش اعمال زمان ساحب نیست تأثور کلیش بیشتر در حسود شیعه از زمان اخباری ها شده شد. اما که در حوزه های ما قبلش شیخ بوده کتاب تا اصل این تأثور که منشعه طرح بحث شد اخباری ها چون این شما در تنبیه دوم که در کتاب شهر خانده توضیحش خواهیم داد اخواری ها اون تصرف اساسیشون این بود یعنی اونی که از نقاط اساسیشون در بحث بود ازم حجیت به اصطلاح قفع به اگر از راه قرآن و سنت اون معنی خاص خودش نباشه ولو پرس و بود البته تره اخباری ها اختصاص و در فقه نداره در کل معارف دینی و البته این مطلبی بوده که در اساس اساسش از زمان انتقال فرسته و علوم طبیعی از یونان و از خرنگ به و مزرقه به دنیای اسلام انجام گره که ما در این مسئله فرس این در مسئله قدم آدم به نظر فلسفه مسلم بود که آلم قدیمه اما تقریب روایات در دلی شرعیه مسلم بود که آلم حادثه اچپاری که بگنید اونا براین برای قدیعی اقام میکردن در اعتبار آلم قدیم باشه این براین برای قدیعی قدیعی رو با زواهر آیا چیکار کار بکنید پس یک بحث در اساس از زمان دخول فلسفه و علوم طبیعی شروع شد در فلسفه شیعه از زمان اخباری ها. اختصاص هم به مسائل فقری نداشت در کل معارف دینی و اینشانا تا حالا من در اونجا شواهدش که عرض می کنم که روشن بشین و به خصوص مرحوم مولا محمد علیه استرابادی برای تقوییت این که مثلا برای این حقیلی نمیتونه در مقابل روایات برایات مقاومت بکنه ولو درست کلماتی ایشان شده نشده شیخ هم کلماتی ایشان ناقص کرده این ایشان اصولاً یک منهج دیگری رو هم اتّباع کرده و اون یک نوع تشکید در خود برهان عقلی است. طبیعیه که ما رو از برجدی تعجب می‌فرماند، می نه عجیبه. در اون زمان ایشان در دنیای اسلام مثلا تشقیق در صحت برهان فلسفی که همش شیاظ پروژه کردن شبیه اون هم در دنیای غرب درونسان شد که اون هم در صحت برهان فلسفی کرد. که همش باشه پس مرحوم محدث استرآبادی برای اینکه جلو عصر رو بگیره اصلا گفتون که اصلش هم هر خرافه شده دیگه بعید میشه چون دلیل اون قیاسه قیاس هم... من همینطوری از ریاس قیاس قیاس حالا یه زمان ها دو تا اشخاصی گیر کردن جایی و هم اصولا مثلا قابل اثبات نیست چی نیست الهی حرمت در از این که و یه مقدار کلام محدث استرآبادی رو انصافا کتاب خوبیه حالا و دیگه نقاضی بشه اما کتاب ما کتاب الثوابل المدنیه انشاء چون یک سال ما 20 سال مریه یک سال ارسال کرده ماکی یک خانواده مکیه ده ثوابل مدنیه خیلی واقعا امیدوارم بعد این کتاب در اختیار شده خیلی مرز با گوش با استعداد فوق العاده مثلا مرز فوق العاده غیر از انصار تفکر در اخبار ما خوب داره کتابش کتاب مفیدی است انشاء ما توی این بحثان وارد شدیم به مناسبت مفیدی پس موادس قط رو به این معنا به این مناسره در اصول ما زمان اخباری ها به شدت مطرح شد بعدها در حصول ما امثال صاحب حصول قبولی کرده که قط قابل نهجیه ممکن است که تو به قطعه تعمل نکن قطعه امزاری بشه تعمل نکن اما شیخ رضوان و سالاله بنابراین به که نهجی از اوی امکان کار نداره و از بعد از شیخ طالاب غالبا حرفشون همینه البته این یک لوازم خاصی تو زندگی عمل ما درست عملی ما درست عملی ما درستون حفظ بشه قرار یعنی خیلی اوردار بنویس خیلی بنویس درستون که درست انجام بده علاوه که مکان از بعد از شیخ بیشتر این معنا یا افساده البته با تعابیر مثل حجیت عملیه حجیت ذاتیه حجیت قهریه ساوی رو مختصری که دار میگه این تعابیر خوبی بحث نمی‌کنید چون بحث فقط کلمات ناایمنا رو فردا ان شاء متعرض می‌شید یه نقدار اطراف و زمینه بحث روشن بشه تا واضحه